خب این درس سومی هست که در رابطه با مصدرهاست مصادر افعال خماسیتی و ثلاثی مصدر افعال خماسی و سوداسی ببینید ما الهاق تعداد حروف اصلی بحث نمی‌کنیم در درس اول دوم در این رابطه هم گفتن بلکه منظور این هست که اون فعل‌هایی که ماضیشون 5 تا حرف داره رازیشون چند حرف داره؟ یا شیش حرف مثلا در باب استفعال مازی چند حرف داره؟ شیش داره ستا اضافی از ستا چی هست؟ اصلی هست پس اشتاد دلبار بار با این درس دقیقا مانند درس قبلی هست چرا؟ چون اینا همشون قیاسی هستند احمر الورد احمراراً اطمأن الوالد اطمئنانا استكبر ان بحساس فيها حصل فعلا اليوم مزيكون استكبر الجاهل استكبارا تقدم الجيش تقدما تقدم. مورف لا حروف اصلي باشا لا تنافس الصناع تنافسا تنافس الصناع تنافسا طب ما فعلي پنج تا حرف اصلی داشته باشه نداریم فعلی که شیش حرف اصلی داشته باشه مصادر الافعال الخماسیتی و صداسیتی بیاید روی قواعد. چون این درس خیلی ساده هست مصدر افعال خماسی و صداسی منظور اونایی که اولین سیغه مازشون پنج حرف داره یا شش حرف داره قیاسی هست و تعتی الاغذنین و بردو از این نیایت الف اگر کانت مبدوئه با همزة وص جا ات ال مع کسر ثالفه و زیادت الف قبل آخره دخته این یقایده چیز جالبی میگه اگر اون فیلم با همزة شروع بود ما نمیشه تدا احمرایت ن استک بره صار ت نمیکنه چه خواسی باشه چه سوداتی اگر با همزة شروع بود به هم وست جاعت جات وزن الماضی مصدر بر وزن الماضی می اشتدادن می بینید بر وزن ولی یک سری اضافه های کش اومده اون اضافه چه بین دوتا دال چی اومده؟ علف اومده اشتداد احمرار اتمعنه اتمعنان استکبره استکبار دیدید منده به آخر چی اومده؟ اومده دیگه چی شده؟ بله معکس ریسالتی و سومین هر حرف یعنی در اشتده سومین چه هست؟ تا هست دیگه میگه سومین حرفش کسر داده میشه و قبل آخر الف میاد این یه ای قاعده کلی هست پس میگه زمان میگه مصدر افعال خماسی و صداتی تی هست و بردو دو میاد الف اگر اون فعل با همزه شروع شده بود همزه وصل بر وزن ماضی میاد معکث رسالفه کسه و من حرف رو کسر میدن و زیاده الف قبل آخره و الف قبل الش مش میاد احمرار احناار مین کسه و من حرف هست کسر گرفته و راک اخرین حرف هست قبل از را الف میاد اون الف اخر نشانه نفس اون مهم نیست اون الف آخری نشانی چه منسوب هست؟ منصوب بودن است. اصل کلمه اشتداد هست اصل کلمه چه چون در این جمله مفعول مطلق هستند منصوبا و چون منصوبا الف آورده دیگه این قاعده املاعی هست جان؟ میگه بر وزن همون فعل ماضیش میاد مثلا اشتا ده با اشتداد مثل مازیه ولی گفت دو چیز اضافه میکنیم یک حرف سومو تکرار میدین دو ما قبل آخر الف مییاد مثل همون ماضیه ولی چیکار میکنیم به سومین حرف تکرار میدیم و در آخرش ما قبل آخرش یعنی قبل از حرف آخر یک الیف مییاد بله قبل از آخر الف مییاد با و امکانت مبدوعتا. بتا اگر این فعل خماسی یا سوداسی با تا شروع شده بود مانند با تفعول و تفعول که با تا شروع می بود مبدوعتاً بتا این زائده با تا زائد شروع شده بود جاعت على وزن الماضی این هم بر وزن الماضی می آید معظم ما قبل الاخر فقط ولی این ما قبل الاخر رو زنبه می دن مثلاً تقدمه ببینید مصدرش تیمشه خیلی ساده است. ما آخر رو زمه بدید تبدیل به مصدر میشه چه تقدم تقدمه میشه چی؟ تقدم, تقدم. تنافسه میشه چی؟ تنافسه. تنافس بهمین سادگی پس این مصدر افعال سلاسی رو خوندیم منظور سلاسی مجرد مصدر افعال روبائی رو خوندیم منظورش چه روبائی مجرد چه اون مزیده مزیدهایی که ماضی اولی سیغه ماضی حرف داشت و اومدیم به مصدر افعال خماسی و سدای بعد از اینکه مصدر رو توضیح داد الان میخواد بگه که این مصدر عملهایی انجام میده مثل فعلش که در این درس توضیح هدرس بعدی